خوانندگان و بینندگان گرامی در صفات اجتماعی معاصر، مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، السو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راهبرشوم، سلام و درود و شما بخیر. با برنامه کسادگرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نطبگان علمی افغانستان، کسادگرایی را از زوایا و مناظر مختلف به بحث و بررسی می‌گیریم. چشمانداز این برنامه بررسی کارایی کسادگرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن افغانستان صلح‌آمیز و مرفه در پرتره اندیشه‌های دست یابد. رابطه کثرتگرایی با مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی چگونه است؟ اصول اساسی مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان از دیدگاه کثرتگرایی کدام موارد است؟ چگونه برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که پیرومونی نهروی مشارکت زنان وجود دارد. از کثرت‌گرایی بهره‌برداری مفید نماییم. این سوالات را از آدرس مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با کارشناس علمی برنامه با کنکاش می‌گیریم. مهمان من در این بحث محترم استاد منیژه رامیزی، دانشجوی دکترا در آنقرہ و استاد فندونی کابل است. استاد رامیزی گرامی به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. تشکر سلام و درود برای شما برای عزیزایی که شنونده برنامه هستند و در همچون یک فضا و یک وضعیتی که ما نیاز به بحث ها و کنکاش های علمی و آکادمیک داریم چونین یک برنامه و نشر از طریق فضای مجازی یا اینترنت و, و دسترسی دوستا و هموطنان ما در سراسر سر دنیا و آنچ گفتمان ها و بحث ها یک گام هست است ما از شما تشکر و سپاسگزاری می تشکر جناب استاد رامیزی اگر بحث را از آغاز کنیم به نظر شما کسرتگرایی چیست و مفهوم کسرتگرایی گونه به وجود آمده است؟ تشکر خوب در قسمت کسرتگرایی وقتی به کتاب و آثار و مقاله و تحقیقاتی مسائل مراجعه میکنیم بدون شک با دیدگاهی مختلف سر میخوریم ولی تمام این ویدگاه ها برمهور یک نقطه میچرده و آه، شاید آه، کسایی که از دید جامعه شناسی هست های متفاوت انجام داده باشند سیاستمدارا مدارا و سیاستگزارا گزارا مختلف و متفاوت خودشان و امیتسم افراد و اشخاص دیگه که صاحب نظر و دید... دیدگاه داری زمینه و داری ارس هستند یعنی در کل کسردگرایی با مو باور امومی یک مفهوم کلی هست به معنای حضیه است که ما باید تنوع را در یک جامعه بشری یا در یک جغرافیایی که زندگی می کنیم باید بپذیریم، گوناگونی گونی را باید بپذیریم و این مورد پذیرش افراد و گروه ها و اشخاص را اینا قرار بگیره در کنار از یک ما باید این مسایل را می میپذیریم با جنبه ها و شاخص های و متفاوت کسفت سر می خوریم. و در کنار از هم مثلا در بعضی از تعریف و بعض کثرتگرایی بایی تر که چون این همی رو به منده پذیرفتن تنوع و گونوگونی یا همی که ما امروز از این یادآوری و بیشتر می به بی این مباحث بپردازیم و در جامعه غربی بیشتر و در جامعه شرقی به یک نه و به تعریف متفاوت دیگه در واقع بعض زرفات به این باورستن که یک نوی از حکومتداری خوب از در بیانگه بشهدی چند نقطه رو می بحث در آغاز را بکنم مخصوصا کسرتگرایی علمی یک بحث جدگانه خودشو دارک شاید از این بابت طریف و دیدگاه متفاوت مطرح و انقلابای علمی را بیشتر در بر میدیره کسرتگرایی دینی هست که ما شما بیشتر شاید به نیاز داشته باشیم و مخصوصا اگر به گذشته مراجعه بکنیم برمگردیم و میبینیم به جنگای که مثلا تک یا تک مذهبی در دنیا مثلا امو جای خودا نتانست باز بکنه و با شکست مواجه شد به امیختم کسرابگرایی سیاسی که شاید محور بحث امروز باشه و بحث های گذشته و آینده که ایدئولوژی مطر مطرح است موضوعات ساختارگرایی و پساساختارگرایی بحث رئالیسم و گرایی مسائل در چوکات از این مطرح میشه و می گسم کثرتگرایی فلسفی هست شاید از دید از دایری برنامه بحثش خارج باشه ولی بی‌رب نیست چرا که تاریخ‌چیج میشه به بحث امو های فلسفی این بحث کثرتگرایی یا پلالیزم داره و دیگه هم مکاتب چگانی که به اینمی بحث کسرت گرایی پرداخته دیگرگونی های فرهنگی از در جواب مختلفینا ولی مییم در قسمت کثرت سیاسی که شاید دف برنامه هم بیشتر کر گرایی سیسی و کسرت دینی باشه که بحث دینش شاید از از کسی که با کار و فالیت های دینی یا علم دین دی، دی دی داره شاید بیشتر با او تعلق بگیره و بینانه با یک شهرون افغانستان بحث کسرتگرایی سیاسی را که شما در ادامه برنامه اشارات داشته باشین به اینوان یک اصل و یک رهنما برای گروه ها برای افرادی که در یک جرافرافی های بشری زندگی میکنند خاطر از اینا یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند به با اقاید دو حلایق هم دیگه خود بکنن. و بکنند عقاید و حلایق هم دیگه و بلاخره منجر به این که یک مسئلات عمومی شکل دیره. گرچه جامعه ها به این باورستن که این چیز در جامعه که مرندگی میکنه مطلق وجود نداره. نمی ما ایک چیز مطلق منجر به مسئلات عمومی شود یعنی نقطه ای که کسردگرایی به او اشاره داره اما مسئلات عمومی هست که های مختلف افراد مختلف اما که وجود داره ما اقاید و دیدگاه ها و امگوهای فکری این مسائل هم دیگره با توجه به تفاوت ها و کمدودی که هست بپذیریم بس دیگه چی زمانش شکل گرفته بازم اگر ما این به تقیقات و کتابای اون مراجعه بکنیم با آثار با دیدگاه مختلف سر میخوریم. بعضی آثار بر ما اشاره میکنه که با قبل از میلاد و با دیدگاه ارسطو و افلاطون و سقراط و این مسائل موارد کی هم بی‌رب نیست یا مثلا در دوره بدین می می‌بینیم که در تفکر انتقادی بیشتر به این مساله پرداخته، باید همه گروه ها با مسئله کارشان به انجام ما در استماعی حموز و شفرورشم در, در بود سیاست، جامعه شناسی، مسائل موارد دیگه ولی بیشتر بعضا به این که چون این از دل فلسفه غرب برخواسته هست با که برابت با برسای اسلامی نیست امون سال 877 تا 881 احشتاد بیشتر برای ضرور از این مد نظر میگیرند که مثلا امو کتاب موابدالطبیع که در سال 1841 در آلمان توسط یک فیلسوف بنامه هرمان توتسه به نشکر میرسته و در این عدف نشدی کتاب از این فیلسوفی است که میخواید امو تنوعی که در طبیعت وجود داره تمام چیزایی که در طبیعت وجود داره که کتاب بنامه موابدالطبیع است این بسته مطرح میکنه و دیدگاه مختلف متفاوت بعد از این هم شکل میگره و پیش از این هم وجود داشته ولی چون اکثرا به این باور هستند که این از دل فلسفه غرب برخواسته بحث باعث کسردگرایی و دروج هم بیشتر جا افتیده با وجودی که ما باز هم اشاره با موضوعات اسلامی هم بی ربط نیست ولی بیشتر در آثار ویلیام جیمز نیچه یا هم مثلا در آثار اگل کانت دینامو شما این باعث کسردگرایی را خوب می‌تونیم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم به خاطر از اینکه اینا در چند بود آمدن به این بحث پرداختن مثلا از بود معرفت شناسی پرداختن از بود دین پرداختن یا هم آمدن از بود اخلاقیات پرداختن یا حتی هم ما ایره در آثار شوهرهای قرون مختلف قرون وسط، وسطی و بعد از دوره رنسانس این مسائل موارد ما بحث کسرتگره را پیدا کرده میتونیم حتی بعض آب بیبار حقیده هستند مثلا در اشهار مولانا ما یعنی سالهای بسیار قبل ما بسید کسرتگرایی که انسان ها باید تنوع مسائل بپذیرند ب... این مسائل مورد ما پیدا کرده میتانیم ولی من شخصا با دیدگاه مختلف در قسمت از این شکلگیری، بسید کسرتگرایی سرخورده ما مطمئن هستم که دوستان در این زمینه با مشاید اتفاق نظر داشته باشه و شما هم ببینین ببینن تحلیلایی که در اینمی آثار و مقالات و کتاب ها و دیدگاه ها و حتی از گرفته تا و نویسنده و اینا اینا به تحلیل وزیع هم پرداختند در بود کسرتگرایی و در بود تعلیلی هم به این مسئله پرداختند ولی آیستا, آیستا در جوامه مدرن که از گزار هست آلت بحران از هست آلت سنت به مدرنیته هست باشکال با و انواع مختلف و خودش شکل صدا گرفته با تشکر. وجود از کنار مفهوم کثرت گرایی اگر ما موافق باشند مفهوم کثرت گرایی را به نظر ما سندوزیک کافی شما وازیخ ساختمان برای شما اندو که دنبال کننده برنامه هستند در کنار مفهوم, مفهوم کثرت گرایی مفهوم, مفهوم, مفهوم, مفهوم مشارکت یا مشارکت سیاسی را سی سی سی کمی به موضوعم بپردازیم بعد ادامه دنبال باقی خوب گستن من به ادامه بس نکات عرفای دیگرم داشتم خیر میشد لابلای بس باز با او هم بپردازیم بخطر از که بس کسی کسی درده این بس جامعه هست این در روی صحبت شد و عباد مختلفش گسترده تر میشد و این که چما ارتباط دادیم با بس مشارکت بدون شک وقتی ما بس مشارکت مطرح میکنیم مشارکت از رو به تعریف بکنیم مشارکت به معنای دخالت عام افراد یعنی مردمی که در یک جغرافیای بشری زندگی میکنند مثلا در های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در تمام اینمی زمینه است و از طرف دیگه هم وقتی ما مییم بحث کسرتگرایی گرایی رو میبینیم خود کسرتگرایی گرایی هم در ذات خاص یعنی به به این معنا مفهوم است که یک رابطه تنگ و, تنگ و مستقیم با بحث مشارکت دارد چرا به دلیل از ای که وقتی ما میاییم این همی بحث مطرح میکنیم بحث مشارکت و بحث کسرتگرایی را در واقع یک وسیله بر ما میشه خاطر دستیابی به توسعه و عدف طرح توسعه را بر ما در جامعه بشری مطرح میکنه از این لحاظ اردوی از این با هم رابطه داره و ای که تو میتانه به یک گفتمان غالب در جوامه امروزی تبدیل شد و مفکر کنم جزی از تان است راه رتیدن به توسر بر ما اینمی مشارکت و در کنار از او بحث کسرتگرهی بر ما مشخص می سازد و واضح می سازه اموار می سازه. و راه پذیرفتن تفاوتها را در جامعه بشری بر ما مشخص می سازد که یک نکته بسیار مهم و قابل دقت است و بر ما مشخص میسازد که ما چطور یقین پیدا بکنیم به با باورهای همدیگه به با توانایی های افرادی که در یک جامعه بشری زندگی میکنن و ما را به اونمون نیازهایی که در یک جامعه بشری داره به انسانها در یک جامعه بشری نیازهای متفاوتی که داره ما را به او متوجه میسازد و ببینین در بود مشارکت خود مشارکت یعنی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم افراد میایند در فروسه مثل مثل فرایند های مثل سیاست، اقتصاد، موضوعات اجتماعی، فرهنگی در تمام از این مسائل میخوین که به نفی دخلی باشن این میتونه یا فردی باشه، یعنی خودی باشه، دو جانبه باشه، میتونه چند جانبه باشه از این یک رابطه مستقیم اینجا بر ما مشخص نیست وقتی ما میرم در کسرتگرای تناور رو میپذیریم در این جه هم ما میتونیم با خردکار بکنیم چند فردی کار بکنیم، جمعی کار بکنیم و اونمو توسع را در اونمون اونمو توسعه در جامعه بشری رقم بزنیم. و دخالت همه حساس همه قسمی که در مشارکت مهم است، در بودی کاثرت‌گرایی هم مهم است. و این بازم ما تاکید به این میکنم که در جوامع مختلف همه قسمی که مفهوم مشارکت یک مفهوم هست که با وجودی که دیدگاه کل کل است که مشارکت همه هم همه گروه ها باید در زمین های مختلف دخیل باشند و خود دخیل ببینند زن، مرد، و گروه های مذهبی و سایر اخشا ولی از یک جامعه به جامعه دیگه هم متفاوت است این قسم بس کسراتگروی هم از یک جامعه به جامعه دیگه متفاوت است مثلا من میخوایم در زمینه یک مثال داشته باشم به طور مثال اگر بیایم کمی بس تکلیمیتر بسازیم پراغماتیزم یا عملگرایی. خود از این مثلا دیدگاه ویلیام جیمز اینمی رو مطرح می سازه که ما وقتی در یک جامعه بشری زندگی می کنیم ما با نیازهای مختلف سرکار داریم با افراد مختلف سر کار داریم با اهداف مختلف سرکار داریم اینمی تنوع فکری تنوع عدف تنوع رفتار تنوع انسانها تمام از این ما را با یک تعداد از عقایق مواجه می سازد. تیداد از عقایق. و این عقایق ما را مواجه به این می سازد که ما باید بکثرتگرویی با فکر بکنیم وقتی که بکثرتگروی فکر کردیم و ریشه اولایه های پنهان نزی را برش تلاش کردیم بدون شک ما را ارتباط می با مشارکت. یعنی وقتی ما اقشار و افراد و گرایی مختلف هم می که مو کوع یا مسائل مورد در موارد از وجود داره این مورد پذیرش قرار بتیم بدون درنگ بدون توقف میاد ایدارن که باید با مشارکت همونی شهرون فکر بکنیم ولی متاسفن در جامعه افغانستان تا جایی که مطالشه این نمی بث کسرت گرایی به معنای واقعیش جای خودش باز نکرده چی در گذشته بوده چی در شرایط فعلی استیهام در این ده عوامل و مسائل مختلف متفاوت خود شده داره و با این قسم مشارکت شهروندان ما یک مشارکتی که به معنای واقعیش وجود داشته باشه نداشتیم شما ببینید مشارکت ما مشارکت ابزاری داریم مشارکت تعمیلی داریم مشارکت توسعه داریم ما در افغانستان معمولا مشارکت ابزاری و مشارکت تعمیلی رو تجربه کردیم ما با مشارکت توسعه که ما را ببره به طرف بحث پررزم یا کثرتگرایی یا مشارکت همگونی شهروندا ره تحقق ببخشه ما متاسفانه جا بر باز نشده گاهگاهی مثلا به دوره مشروطیت به ای مثئله راه باز شد ولی دوباره پس فرازنه شیبای خودش داشت در بیست سال جمهوریت بعضی بست و مسایل خودش داشت گفتمان ها در ایز بمینش ولی به معنای واقعی ایش که باید کار اساسی صورت میگرف نشد و چالش ها و مسایل موارد داشت و داره و د دا شرایط فیدی بدون شک واضح است که بست همه سربسته باقی مانده و در کنار زیگ سربسته باقی مانده سرزنش و سرکوب هم صورت گرفته و صورت میگرفت شاید موضوع برمانه باشد که ما به اون هم میخواییم مشکل استاد در کنار مشارکت خمگانی شهروندان که شما مطرح کردین در پیرامان مدار و موارد مختلف و اساسی در جامعه مشخصاً اصول اساسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه کسبگرایی کدام موارد هست؟ کدام موارد برجسته هست به نظر شما؟ <تصفيق> ببینین، اصول حساسی که مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان از دیدگاه کسرتگیرهایی در یک جامعه رقم بزنه گرچند اگر بس افغانستان باشه باز مازی بس کاملا فاصله داریم اگر بس عمومی باشه باز در این زمین بعض نکات و بعض مسائل موارد وجود داره یعنی بدون ربط نیست از هم و بحث مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان مخصوصاً در جهان امروز که ما شما جزی از او هستیم آه, یعنی یک بحث بسیار زیاد مهم است آه, با وجود که تلاش های بسیار زیاد صورت گرفته کار شده زن به اینمی حقشان نسبی در جوامی بشری دسیدن ولی قضیه در قسمت موضوع افغانستان کاملا آه, متفاوت است ببینین در این زمینه اینمی خود پذیرفتن تنوع در سوریت پاسخ اینمی سوال بر ما میرساند چرا وقتی ما میاییم از پذیرفتن تنوع یا گوناگونی بحث میکنیم در کثرتگرایی در بود مشارکت هم حیقی مسئله است ما میاییم مشارکت گروها و افراد و اقشار مختلفه موارد بحث قرار میدیم خصوصا وقتی بحث ما در هر چیز زنا اگر باشه کاملا بر ما مشخص میشه همو جایگاهی را که مرد در جامعه بشری داره زن هم باید داشته باشه حق رائے را که مرد داشته باشه باید زن داشته باشه حق کار حق آموزش تمام مسائل موارد و ببینید اینمی پذیرفتن تنوع در گرایی با وجودی که یک طرف قضیه را علم میکنه، یک طرف مسئله را علم میکنه و پاسخ سوال راه میکنه. رابطه بین مشارکت و توسعه را مترا این یک نکته بسیار زیاد مهم است بر ما و مطرح شدن رابطه بین مشارکت و توسعه یا منجر به با بازدی فودی میشه یا منجر به با بازدی اجتماعی میشه که در جوامع غربی و در جامعه جان اول جان دوم مردم این تجربه کردن. ولی در جوامع مثل افغانستان ما نه تنهایی تجربه نکردیم، ازش فاصله هم داریم با وجود ازی که ظاهران ما اداوایی میکنیم که در دوره سال جمهوریت به ای رسیدیم. و دیگه ببینین که می بحث که باید ما مشارکت اجتماعی سیاسی زنان را در بود کسرگروی ارزیلی بکنیم. اصل دوم بر ما مسئله زنان و نظریه سرمایه انسانی را مطرح میکنند. این یک است. یعنی وقتی ما میاییم بسید کسراتگیری را مطرح می کنیم نظریه زنان و سرمایه انسانی مطرح میشه و زمان میتونه که به کورسی بشینه و تحقق پیدا بکنه که رشد همه جانبه صورت گرفته باشه و ما زن را به عنوان یک نیروی پویا، یک نیروی متحرک، یک نیروی که کار و عمل کرد از این میتونه منجر به بازدهی خودی و بازده اجتماعی شوه ما با این نگاهکنیم که متاسفانه در زیامه اق مثل مثللهافانستان به این زیات نگاه نشده و در شبایطفیلی شرایش کاملا متفاوت است. نکست مررک من خیمش ها بکنم زنان و نظریه سرمایه اجتماعی رو مطر در قدم دوم سرمایه انسانی بود در قدم سوم سرمایه اجتماعی را مطرح مطر میکن. ما در بود سرمایه اجتماعی با وجوددی که مفهوم سرمایه اجتماعی جدید است در گفتمان اجتماعی گفتمان سیاسی در اوزیز دنا در اوزیز مشارکت همگونی یعنی ساختار اجتماعی که بر ما به معرفی میگیره که در ساختارهای اجتماعی این قسمی که مرد نقش داره زن هم باید نقش داشته باشه و یک حصل مهم در این رابطه است و نقش زن را به یک یک زیربنای مدنی در یعنی گفتمان کثرتگرایی مطرح می و به عنوان اینکه میتونه در اقتصاد نقش داشته باشه در سیاست نقش داشته در سایر ها وقتی در اجتماع اومد در سایر زمینه ها هم میتونه یک نقش پویا و نقش معنادار ایفا بکنه. بکنن و دیگه زنان و نظری مشارکت هم می کنن که ما شما دی بودم های خود داشتیم و داریم ما زیاد به اونمی شاید عدف برنامه بس اکدیمیک باشد تا رفتن به لایه های پنهان اجتماع نظری زنان و مشارکت هم بس رفا هم همین که بر مرد مطرح میکنه در کسرتگرائی و در مشارکت بس ای بس بر زن هم مطرح میکنه دسترسی را به همه خدمات بر زنا هم مطرح میکنه پذیرش که یعنی پذیرفته شدن در اجتماع که ما گناگونی افراد را تنوع فکری و تنوعی که از دیگه مسائل موارد زبانی مسائل این برای عرصه هم مطرح میکنه و بس مشارکت در کل مطرح میکنه تسینگیری را مطرح میکنه کانترول را مطرح میکنه یعنی در کل که بیایم بس جمع بکنیم یعنی با این معنا و معفوم است که ما میائیم امو رابطه میان کسرتگروی را و رابطه میان مشارکت در جب بس میگیریم در قسمت اصولی را که میخواییم برای کثرت کسرتگروی و برای مشکارکت زنا در حرصه حیات اجتماعی و حیات سیاسی مطرح بکنیم که اردوی ازی هم از دید جامعه شناسا و از دید افرادی که داری زمین است یک بحث مهم است ولی بازم ما تاکیت میکنم در جامعه افغانستان نه تنهایی که جا باز نکرده گفتمان سربسته باقی مانده و حتی گروه های فکری ما به این بحث نترداخته چرا؟ به دلیل لازهی که گروه فکری در افغانستان بیشتر مردا بوده تا زنا و تا زمانی که زنا داری گفتمان دخیل نشن بحث مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنا در بود کسرتگرایی جای اصلی و اصلاسی خود پیدا کردن نمیتونه گفتمان هایی که در 20 سال شکل گرفت با به ای که گفتمان های پروژه‌ای بود با توجه ای که گفتمان هایی بود که اما ایده و فکرش از بیرو تذریق می در ذهن امین زنهایی که می آمدن روی ازی کار می کردن و از جهت دیگه هم صلاحیت ای بست و ای گفتمان ها در دست مردا بود جای یک جنبش فکری که بتانه نقش مشارکت مدنی مشارکت اجتماعی مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی و حتی مشارکت قضایی زن را که عرفای خلصه در بود اسلامی داره ای را بیاره در بود کسرتگرهی خاطر مشارکت همگانی زن در جامعه مثل افغانستان مطرح بسازه خالی بود و ما باولید فکر و تولید اندیشه و ظهور جنبش های فکری در می شرایط بران که نیازهای ما رو تشخیص دادم میتانیم برش نپردازن های سال جایزی گفتمان باقی خاتمان کس را گرایی یک بحث جداگانه خاتمان بحث مشارکت زنها یک بحث جداگانه و اینمی خالیگا پر شد دوستان و عزیزایی که صدای مرا از این می آدرست نشنون نظر ما بر از اینا امیر هست که ما بجای از این که میاییم به بحثای کلانتر میپردازیم پردازیم برای که باید زن تنها مشارکت کسی داشته باشه بیایم اینمی گفت ما نه در عرصه کسرتگرویی بر زن مشارکت اجتماعی مشارکت پیاسی شد. که دیگه مسایل باید باز دربار بگیره ای جرأت بوسیدن اینا می بحث هم اینمی پیواد زنایی که در داخل افغانستان هستند و بیرون از افغانستان هستند ندارند و جز بعضی‌ها که شاید درش کار کرده باشند، مطالعه کرده باشند، اکثریت مطلق به یک خاموشی هستند مثلا به این مساله دقت نکردند که ما نیاز داریم که باید در بحث کثرت‌گرایی به این بحثا و به این مسائل هم بپردازیم. تشکر جناب در میان صحبت‌هاش ما از رابطه میان توسعه یافتگی و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان یادآوری کردیم. به نظر شما نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در توسعه یافتگی جامعه جانسئون مثل افغانستان چگون است؟ چگون ارزیابی می‌کنید؟ خب ببینن وقتی من باز هم رابطه میان یعنی مشارکت اجتماعی و سیاسی و توصیح افتایی جوامی مطرح می شود در این آدم کاملا خاموش می که در بود افغانستان کارهای شده ولی کارهای هم باید می شد اینا انجام نشد ولی ما به چند گفتم هم این زمینه می خواهیم بپردازم تا این موضوع و تر و واضع شود. شد ببینین خود مشارکت مهیار توانمندسازی زنان در توصیح است این باید هیچ وقت فراموش نکنیم المتأسفانه از زنان در افغانستان این نکتر فراموش کردن که مشارکت میه یار توانمندسازی زنان در کل است تا زمانی که زنان مشارکت نداشته باشند در واقع این توانمندسازی زنان در توسعہ نمی رقم بخورد شما با تاریخ اگر بیایید مراجعه بکنین ببینید تا زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق نافتیده بود در دنیا زنان مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی و هیچ نمشارکت معناداری در سطح دنیا نداشن. چی برست که ما بیاییم ای گفتمان باز بکنیم در افغانستان. چرا بخطر از بعد که در جریان جنگ جانی دو وقتی مردا مصروف جنگ میشن زنا فرصت از پیدا میکنن که در اجتماع وزور پیدا بکنن. فرصت از پیدا میکنن که اینا هم فکر بکنن که جنگ که در دنیا مردا را ما برای آوردن صالح برازی کار بکنیم برای جنبش‌های فکری زن کار شد یک اندازه گفتمان ها و مسائل موارده که ای رقم زد اونمو نقش منادار امروزی زن را در بود مشارکت اجتماعی مشارکت سیاسی و در کل اگر مشارکت عملگانی را در بر بگیریم ببینید مشارکت اجتماعی زن که در دهه نزده و افتاد مطرح شد یعنی بیشتر بازور فیمنیزم مطرح جنبش های هم داری ده مطرح میشه خودش داره ولی, اینا می مشارک... ولی مشارکت سیاسی زنا وقتی که ما میایم به بحث مشارکت سیاسی زنها میپردازیم یعنی زن را از, از... از سنت به مدرنیته میرسن یعنی به این مانا که ما گذار میکنیم جامعه سنتی اصنعت گذار کنم یای به سمت مدرنیته و یک سلسله کورو فعالیت ها مسائل مواردی که در این زمینه در همینم انجام شد باعث از این شد که رویکرد زنان توسعه در دنیا شکل میگیره وقت وقتی رویکرد زنان توسعه در دنیا شکل میگیره بعد از دهه 1970 به بعد اینجا چنان مثلا مطرح میشه. اقت آموزش مطرح میشه، اقت کار مطرح میشه، مشارکت زنا مطرح میشه. یعنی مسائل موارده که در دنیا امروز مخصوصا امی بس لبرال فمینیسم امریکا مثلا به ای بس بیشتر میپردازد. اینی مسائل موارد مطرح میشه. ایران وقت ما میاریم اینه میره در بود وضعیت افغانستان به بس میگیریم با وجودی که چالش‌ها چالش ها و مسائل موارده خودش داشته یک سفل کارا هم انجام شده و دلیله که ما در افغانستان بینمی مثلا نرسیدیم و تحقیق فیدا کرده نتانست و شرایط فیلی ما هم کاملا متفاوت است دلیل از این است ای ای ای ای که آنوز عدالت جنسیتی تحقیق نیافته باور باورمش شخصا و عدالت جنسیتی در افغانستان یک شکل نمویشی استمبولیک خادشت داشته و ما نمیتانیم که اینمی بحث بگیم که واقعا در افغانستان اتفاق افتاده بود کارایی که انجام شد به دلیل از ای که حدالت جنسیتی تحقق نیافت ای بحث به ناکامی انجامید ب دگه ببینند بحث تمام اشکال تبعیض بر عله زنها مدرست. در کشور مثل افغانستان که دهرهای جنگ سپری کرده اشکال اشکالتبعیز بر له زنها وجود داره و با جود که افغانستان حوزه کنوانیسین سیده یا رفع هر نو تبهیز برعله زنا بود و با وجود که شرایط فیلی ای حق از مردم افغانستان گرفته چون دولت سرپرست فیلی رسمیت ندارد در دنیا و در کنار ازی یک تزمین برای مشارکت کامل و برابری برای زن در برابر مرد و بر رهبریت زن وجود نداشت و نداره بعد آغاز اشاره بایی کردم که اینمی بستا این مسائل موارد در افغانستان یک شکل سمبولیک خودش داشت و حال خواه اصلا این بست وجود نداره و آینده هم برای زن افغانستان در اینمی بود یک اندازه هم با قیمانده ولی راهکارها و کارها و بعض روی کرده میتونن که ما را به اینمی رابطه برستانه که ما بتانیم دلاخره مشارکت اجتماعی، و مشارکت سیاسی زن‌ها را ارتباط خیلی بین با توسعه‌ی یافتگی جامعه‌ی مدرن زندگی می‌کنه. در یک جامعه که ما نیم از قشر جامعه به که اون زن است، او را انکار می‌کنیم، از تعلیم بارش ممانعت ایجاد می‌کنیم، از کار ممانعت ایجاد می‌کنیم. رفاه اجتماعی برش نهی های اجتماعی، نیست عطا مسائل بهداشت و رفتن به آرایشگاه و مسائل موارد دیگه وجود ندارد یعنی به این معنا و مفهوم است که نقش زن در یافتگی جامعه زیر صفر است یعنی ما وقت آموزش و حق کار و این مسایل نداریم. ولی بازم ما تاکید میکنم میتونه برازی بس گفتمان های زنانه باز شود که ما نقش زن را در توسیافتگی جامعه به سمح مردم و آگایی مردم برسانیم و این یک در را یک بابره برازی باز بکنه که مردم و مخصوصا افراد کم تحصیل و کم تعلیم به با این در, ب... در توسعی آفتگی جامعه در چرخش حیات اجتماعی یک نقش معنادار میتونه بازی بکنه و اگر ما این حق از اینا بگیریم یک قسمت از جامعه میتونه سلب شوه و از زن را از آلت موجود مصرفی موجود تابع موجوده که اصلا استقلالیت مالی و فکری و ذهنی خود نداشته باشه از این حالت نجات بسیم استاد رامیزی اگر به در سیر زمانی مشارکت زنان در افغانستان در عرصه‌های مختلف خصوصاً در عرصه اجتماع و سیاست مروری کوتاه داشته باشیم به نظر شما اوج مشارکت زنان در حیات اجتماعی سیاسی افغانستان در کدام دوره آورده شده در تاریخ معاصر افغانستان اگر نگاهی کوتاه داشته باشیم به این موجود من نگاهی کوتاه این مسئله شما افغانستان وقتی میگین یک کشور پنج هزار ساله بیشتر از هزار سال تاریخ داره با وجود بساط تاریخی و مسیر موارد خودش بحثی مشارکت زنها در حیات جمعی ما کار کردن میتونیم بحثی ده موارد قبل از اسلام وجود دارد در مرحله بعد از آمدن اسلام و بعد از او هم در افغانستان نوین یا بعد از اینکه افغانستان جدید ایجاد میشه دریج هم مطر است اما همیشه با فراز و نشیب های یس و امیدین مشارکت زنا در افغانستان مطرح بوده تا زمان جنگ جهانی دوم در دنیا خبری از مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان نبود همی در افغانستان همی بس مطرح بود ولی امو اوج شکل گیری مشارکت زنان را در حیات جیمی در افغانستان اگر بایم مطالعه کنیم ما برسر ارتباط میتنیم با دوره امانی ولی قبل ازو در دوره امیر حبیب الله, الله خان یعنی به ای بس پرداختش شده بود عد برای عق آموزش دخترا نا یک سلسله کارا اقدامات انجام شده بود که باز به با ادامه از او به تسلسل از او امان الله خان امد بر کار در دوری امانی کارها و فعالیتها و مسائل صورت گرفت از این جمله ببینید مثلا آمو بعد از استقلال افغانستان مخصوصا بعد از دوازده سدو در اولین قانون اساسی در افغانستان یعنی یعنی اساسنامی دولت زمان که با وجود یا ساخته میشه در او یک, یک سلسله امتیازات بر زنها در نظر گرفته میشه مثلا اقیه ها موزش ازدواج یا من چند همسری یا هم مثلا در مادش از قانون اساسی همون دوره تعلیمات اتدائی بر زن اجباری تلقی میشه بعد از او هم مثلا مکتب مسئولات ایجاد میشه و جریده ارشاد النسوان و کارا و فعالیتهایی که میشه مثل لیسه ملالای لیسه اسمت و مسائل دیگه که بر روشنگری در حرصه زنها انجام میشه اینا ما به این نتیجه میرسانه که عصر امانی دوری رشد و شبوفایی برای پیشرفت زنها بر مشارکت همگانی زنها مخصوصا در حرصه آموزش و حضور در اجتماع بوده. ولی بعد از او ما دوباره تغییر می‌کنند وضعیت در زمان همیشه بلوک کلاکانی کلکانی است باست میشه شرایط تغییر میکنه و بعد از اون هم آیستا ایستاد در دورهای مختلف که خلاصه به سازمان فایما این دوره زایرشا، آن دوره زایرشا در ای دوره هم کارا و فعالیت و مسائل موارد دری زمینه انجام میشه. حتی قانون اساسی در اون دوره شکل میگیره در ساختن ازو بر زنها حق داده میشه که باید ابراز نظر دیودها داشته باشن بعد ازو هم در دوره سردار محمد داود خان هم کاران فالیت های که انجام میشه بر زنها یک نقش منادار در نظر گرفته میشه در حیات جمعی و بعد ازو هم که بیاین در دوره کمونیست ها یا ایدئولوژی کمونیزم در افغانستان در دوره متفاوت میشه با یک ما از سنت گذر می کنیم و مدرنیزم و این گذار کردن از سنت به مدرنیزم با وجود ازی که یک بار درست گرفتیم درست تاریخی در زمان امانلا خان بود و این نتیجه نداد در دوره بعد از او دوباره با ناومدی مواجه شد مشارکت زنان باز هم در دوره ایدئولوژی کمونیزم در افغانستان باز هم تکرار مسئله میشه و بعد از او دوره مجاهدین میفته میاید باز هم بعضی آزادی ها، بعضی مسائل موارد مثل آموزش حق کار با بعضی اصول اسلامی و اخلاقی مد نظر گرفت میشه ولی هم یک دوره خوبی هست، عقل نسبی دروازی مکتب و دانشگاه اونا برای دختر و زن افغانستان باز هست و حق کاری نارو دارن با وجود که جنگ های داخلی مانید از یزی مسایل شد اما در دور اول طالب برگورگی این مشارکت به سفر تقرب کرد و پنج سال نشینی زنان اونمو چرخی که باید تولید فکر، تولید اندیشه تولید سرمایه انسانی جا م پیشتر رو کردم نظریه سرمایه انسانی را کاملا از بین میبره و در پنج سال نه کسی به مکتب میره نه کسی به دانشگاه میره و نه تولید نیروی انسانی یا سرمایه انسانی کاملا متوقف میشه بعد از اون م خلاص می سازم به دوره جمهوریت. در دوره جمهوریت ما در کنار از یک دستاوردها داشتیم چالش ها و مسائل ممانیت هم وجود داشت. و نگاه آکیمیت دوره جمهوریت، نگاهی حکومت به مشارکت زنان از بالا به با پایین بود، از پایین به با بالا نبود، یک مشارکت سلسعی نبود، یک نبود، یک مشارکت تعمیلی هم نبود یک مشارکت حبزویی برای زن افغانستان در 20 سال و شکل گرفته بود و این باید صدی شد که قشم تحصیل یافتی که در اوزای مختلف از جمع زنان تحصیل داشتند دانش و درایت داشتند اینا به یک نحوه فراموشی سپرده شدند و به نحوه سهمی بندی ها انجام شد و استفاده هبزویی هست حضور زنان صورت گرفت هرگاهی که زمان ایرای گزارش می میرسید یا قطنامه سیزه سبیست و میرسید و خاطر جلب کمک های جامعه جانی حکومت وقت یعنی بر نه یا یک چند زن روزی و موین و اینا می میکردن بر وفق مرام و خواستای خودشان که مشارکت هفزاری تحقیق یافت ولی مشارکت که توسعی بود آه, که باید تحقیق پیدا میکرد اینی تحقیق پیدا کردن نتانست و بعد از دو هم بعد از بید سال بعد از پانزه اگه است که دو سال میگذره، این شرایط بر هم اگی تعریف شده است و نیاز نیست که به اینوان منبع دسته اول همگی در درمی شرایط فیله قرار داره هم به درک رسیدن که وضعیت از چه قرار است ما هم میخوایم به این بپردازم ولی عواقب و مسایل ناگوار را در, در از مدت برای زنان افغانستان خواد داشت و ما دستاورداری را در 20 سال داشتیم مطمئنن وقت بعد حاموزش حق کار خود نرسیم بدون شرک پیامت های را در حیات جمعی برای اول مردم افغانستان محسن برای زنان افغانستان خواد داشت شکر اصد رامیزی با وجود صحبت هایی شما داشتیم گذاره حوجام بسخته و گذار بدون تحقیق از سنت و مدرنیته و یک با یک بارگی هم در دوره امانی و هم در دوره کمونیسم به نحوی یا مسیروزی جامعه افغانستان به چالش مواجه ساختند و سبب شد که اندیشه اقتصادگرایی در مورد مشارکت زنان به وجود بیاید با اینکه در 20 سالوی اخیر با به قانون احساسی و قوانیک در از 3 مشارکت شعباندانی گیر داشتن تبعید مثبت در نظر گرفته شد 25 درصد قلیسی مجلس نمائندگان 25 درصد شروع های ولایتی برای زنان اختصاص اقتصاد دادشت به نظر شما این تبعید مثبت بیشتر عبزاری بودن یا روند میتونست که به دونی معنی دارست استفاده شد خب، بعض تبعیز مثبت در این وقت خودش یک چیز بسیار خوب بود یعنی به این که حتی در پروسه امتان کانکور یک تعداد از دخترها و خانمها بر اساس تبعیز مثبت یا مثبت مثلا را پیدا می کردند. و این ایجاب می کرد به طور مثال از یک ولایت دوردست مثلا دایکندی که اوجا کورس آمادگی کانکور نبود ولی یک د خانم مجبور بود که باید بیاید وزن کانکل اشترااف بکنه او باید بیا تب بخوان انمهینار شو و در رسهای دیگه بالاخر منجر و مشارکتش در سطح اجتماع شو. یه چیزی بود که یک اندازه خوب تمام میشد ولی در کل که شما وی یادواری کرده از 25 ست ۵ در مجلس مایندگان در ارگانها و در ادارات دولتی با وجود ینی خ در تلاشهایی که جهانی انجام داد. حکومت افغانستان انجام داد مردم افغانستان برای مبارزه کردند رسانای افغانستان برای زمینه کنار مردم افغانستان بودن خود زنا یک یک مبارزه بسیار نفسگیر داشتن در دوران 20 سال با وجود یعنی سهم و مشارکت زنا از 22 درصد در ساختار حکومت و دولتداری و در تمام هر هایی که در حیات جمعی مهم بود و ارزشمند است برای جامعه بشری از خصوصا شورتشان فیزات بالا نرفت یعنی این نشان میده که ما دوچار یک افت بودیم دوچار یک پیشرفت و توسعه در زمینه نبودیم. یعنی با توجه به اینکه یک تعویذ مثبت هم وجود داشت ما تعویذ مثبت حد چند بود برش نگاه میکردم و علی هم نگاه میکنم تعویذ مثبت از لازم اخی آموزش بر ما چیز پذیرفته شده بود برای دختری که در کابل فرصت داشت دختری که در دایکندی داشت نداشت بعد برای یک تعویذ مثبت در نظر گرفته میشد تا ای با محق خود نسبی میرسید ما به بحث از اینکه که چقدر توانایی داشت و نداشت نمی پردازم. خود شرایط افراد آماده همون آموزش و یادگیری مثلا می سازه و دخترهایی که از اولایت می بیشتر توانمند تر بیدن یا بچه ها همه هم. که به این بحث نمی خواهیم بپردازم. ولی در بود حکومتداری تبییز مثبت برای زن این چند بود داشت یکی بود استفاده جویی از یک تعداد از زنا بود ما بازم با او بس نمی پردازم که یک بحث کاملا خفقان کننده و زشت است که در تاریخ مبارزه زنا یک, یک, یک, یک بدنامی بر زنای افغانستان است که بر اساس توانایی خود در حکومت وصل نمی شدن، شامل نمی شدن بر اساس بعض استفاده جویی های دولت مردا در زمان اینا و داخل حکومت شامل نمی شدن. ولی یک چیز دیگه هم هست که تخصص دانش نادیده گرفته می شد دوره. و چرای تخصص دانش نادیده گرفته شد؟ سهم رهبران سنتی یا رهبران قومی بود. مثلا ماون ما اول عقد داشت که یک کس را بیاره موین قیم بکنه. و اون می سنجید که در تیم انتخاباتی ازی در کمپانیو انتخاباتی زی کی فعال بوده؟ اونما آدم ولو که دانش درایت آید می داشت یا نمی داشت و رو می آمد موین یا یا هم برای سنتی دیگر را که ما شما شایدش بوده مثلا خانم وزیر مخابرات تعیین شد در اواخر که اصلا رشته از او آدم قابلگی یا نرسنگی بود یا مثلا شما دیدم که وزیر معرف یا کسی تعیین شد که او آدم کاملا از عرصه کارا و های اکدیمیک دور بود خیاط بود یا کسی بود که دستگاه خیاتی داشت شما ببینیم اینمی تدریز مصبت که برای حساس سهمبندی ها بود کاملا از نظر ما به عنوان کسی که در 20 سال آموزش دیدیم کار کردیم کاملا چه چیز غیر قابل فذیرش بود و غیر قابل فذیرش هست چرا به خاطر از اینکه حق و حقوق سایر زنانی که بیرون از افغانستان تحصیل کردند در داخل افغانستان تحصیل کردند کار کردند زحمت کردند نادیده گرفتن از اینا منجر به این شد که دیگر زن‌ها نتونن در قسمت تولید فکر، تمدید سرمایه انسانی به این مسائل ماوراء به شکل معنادار بپردازن یا هم یک بحث دیگه هم مطرح بود که مثلا تبیید مثبت برای کسایی که دانشها ها کشورهای غربی بودن مثلا فولبرایت، چوینینگ این هم یک فرصت بگیر از دخترای توانمند مورد در داخل افغانستان بودن از زنان توانمند گرفت یا هم در سکتور نظامی شما ببینید در سکتور نظامی در تمام دنیا سمی نیست یک بحث بسیار زیاد مهم است آمدن زنا را در هی ارصد دخیل ساختن به اساس سهمی طبیز مثبت یعنی این چیزهایی بود که نقص نواقص بود که نتانست نمو مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مشارکت قضایی را برای زنا در یک جامعه که جامعه جانی امایتش میکرد مردم افغانستان آزر بود که باید اینمی یک فرصت تلایی بود ای بیس سال اولی متاسفانه که تقف خیلی دا کردن از, از داری باور مکیل خوبی داری زمینه انجام نشت شکر به اینوان سوال پایانی و جنبنده بحث با در نظر داشت سیر زمانی مشارکت زنان به همچنان شرایط این روزی جامعه افغانستان اگر مدن نظر بگیم به نظر شما چی باید کرد؟ که از کستت گرایی در راستای فراهمسازی مشارکت معنادار سیاسی و اجتماعی زنان در بهره برداری مفید و معصر داشته باشد. تشکر. ما در این زمینم چند نقطه دارم. اولا ببینید. ان... بعث دهه زنان که در نزده دستات مطرح میشه بعد از اون هم مثلا روی کرد زنان توسع در دهی نزدست داشتات میشه در ارسیم شارکت اشتماعی سیاسی زنان در تمام دنیا منظور است. اینا جا نمیفته در جامعه بشری خاطر ازی از که یک طرف قضیه در نظر میگیرن طرف دیگه مد نظر نمیگرن ولی بعد از او امو روی کرد جنسیت تو توسع وقت در دهی نزدست شکل میگیره. اینجا به سهم مشارکت زن و مرد تأکید می که باید زن و مرد مشارکت همگانی در جامعه بشری داشته باشه و بعد از در از دو و به بعد یعنی روی کرده تلاش آه، و ب خاطر مشارکت زنان و مردان در جامعه بشری شکل می گیره اینی چیزهای ست که ما به این نتیجه می که ما اگر هر گاه از اینمی گذشته چی در سطح دنیا باشه چی در افغانستان باشه باید در های ها داشته باشیم و وای برای جامعه مثل افغانستان تعمیم ببخشیم. به خاطر ازیه که مثلا در شرایط فیلی تا زمانی که ما م تکیمبعایی است که ما به عدالت جنسیتی نپردازیم در افغانستان اینمی بحث مشارکت اجتماعی مشارکت سیاسی زنا نهفق باخت می مام ما نمیتونیم به منای واقعی این مشارکت اجتماعی سیاسی زنان تقاق پیدا بکن. ولی ببینید در قسمت از این که ما باید چی بکنیم برای زنای افغانستان که باید مشارکت اجتماعی مشارکت سیاسی از اینا مناددار شوم و ما یک فضایی را فرم بیم شرای کلی رو مدم موردش بس ندارم دیدیم شب گذاشتم چالشهای خودش داشت با هم کوی خود دستآوردداری خواص داشت شرایطفیلییه چیزی وجود نداره و. وضعیت آینده هم مبهم است و خاطر از این مبهم است که ما نیاز داریم بر از یک مشارکت اجتماعی سیاسی زنان تحقق پیدا بکنم. نیاز به تفکر کار زننانا داریم که یک یعنی جنبیشه فکری زنان شکل بگیره. نیاز به طرحهایی داریم که دست خود به شکل بگیره. نیاز به تصمگیری های خرد و کلان تصگیری های اخنادی داریم در سطح اجتماع طرف زنان باید انجام شود و زنان داخل شود در پروسای سا و بالاخره این مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در حیات جمعی کارا و فالیتهایی باشه که ما با توجه به روی تردایی گذاشته، روی کردای آینده‌را مد نظر بگیریم که مشارکت اجتماعی سیاسی زنا را الزامی بسازد ببین در این قسمت برای آینده زنها چیزی که بسیار زیاد مهم است آموزش مهم است زنه که آموزش دارد تحصیل دارد اومیتان در تمام ابعاد اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی جامعه نقش معنادار داشته باشد ایراد فراموش نکنیم و نقطه دوم باباول ما انسجام زنا هست زنان در افغانستان هیچ وقت انسجام نداشتند هم انسجام ندارند و از این همی شرایط بحران باید بیاموز زنواری افغانستان در کن نیازای خود تشخیص بکن و یک انسجام شکل بگیره که و یک جنبش فکری رو بر زنا رقم بزنه جنبش فکری پس زمینی از او غربی باشه در پس زمینی از او بازم مردا باشد دستوردی و زنها به عنوان قالب های فکری مردا بگن و دستورده اموال شوند چون این منظور هدف است. یا هم نقطه اخیر ایجاد روایت جدید زنانه که منجر به ایجاد یک فکر مستقل شده شما ببینین دولت جنسیتی با توسعه یک رابطه زیاد مستحکم داره یعنی گفتمان که در دنیا مثلا بعد از دهی 1945 شکل میگیره که باز ده دهی 1970، 1980، 1990 اینا دهه زنان و روی زنان و دهی تلاش زنان برای مشارکت اینا رقم میزنن یعنی اینا یک سسل کارار انجام میتنند مثلا فرض مثال ده 1945 اولین منشور بینیملالی وقوق زن مرز شکل میگیره. الزامی می سازه بحثای بر زن و بحث های مشارکت برای زنان یا ده ده اولین در ده 1995 اولی این کنفرانس بینلی بر از این شکل میگیره. در شرایط فیلی جای جنبش فکری مستقل زنانه بر زنای افغانستان خاالید چی در داخل افغانستان و چی در خارج افغانستان. این زمان میداننمفقشب که یک تفیقی از ایدهها و فکرکر زنان در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان که ت است شکل بگیره و تفیق از این دنیا منجر برای ایجاد یک اتاق فکری برای ایجاد تغییر دستبت به شرایط افغانستان شود. اگر در همچوی یک فضا همچوی یک شرایط چرا بخطر از اینکه بحث رهبری مردا بار بار تجربه شد چی از بحث رهبریت دینی بود از ایدالوجی های دیگه که تفکلات بیرون از افغانستان بود مثل کمونزم و دموکراسی نوین و دیگه ایدیولوژی که در افغانستان تجربه شده اینو نتیجه نداد یک فضا برای بحث رهبریت زن هم در گفتمان سطح دنیا مدرس و هم در گفتمان سطح افغانستان مدرس در افغانستان. اگر به این بحث ترداخته و نهاده فکری مثل ماسید تو به این بحث و سایر یک تجسم فکری را ایجاد بکند تا منجر به اتاق فکری در سطح افغانستان و در سطح دنیا نسبت به شرایط و وضعیت زنها در افغانستان شایسته را که وضعیت زنها در افغانستان بی تاثیر نیست بالای وضعیت کشورهای همسایه و کشورهای منطقه اگر ما ازادی های متفاوتی را در گذشته تجربه کردیم زنای زنان ایران غفته می‌خوردند زنان افغانستان باز از آزادی را دارد که ما نداره ولی در شرایط فعلی وضعیت ما نوهنجورتر از تمام دنیا هست و این نیاز به ایجاد یک گفتمان در سطح افغانستان و در سطح دنیا تشکر استاد رامیزی از حضور عرضشمند شما در برنامه کسرت گرایی افغانستان و از یکی پرسد را به اختیار ما و همچنان شنین دوان را دنبال کنیم به برنامه بگاشتیم همچنان همراهان گرامی ما در اینجا به کسرت نگاه ها و اندیشه ها و اصلی آزادی بیان متحد و باورمندیم و با ماهیت متکسته جامعه عرض میگذاریم ما تلاش می‌کنیم تا وحدت را در عین احترام برد تسترد نگاه ها و باورها در جامعه مثل افغانستان ب وجود آوریم تا برنامه دیگر شما را به خداوند متعال مسررد نامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشریاتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر کردید